از من بر خیام رسانید سلام، منگاه بگوید که خامی خیام، من کی گفتم که می حرام است، ولی بر پخته هلال است و بر حرام. دشمن به غلط گفت که من فلسفیم، ایزد داند که آنچه او گفت نیم، لیکنچه در این غماشیان آمده ام، آخر کم از آن که من ندانم که کیم. چندان که ز خود نیست ترم هست ترم، هرچند بلند پایه تر ترم، زین ترپه که از شراب هستی، هر لحظه که عشیار ترم مست ترم. گل گفت که من یوسف مصر چمنم، یا بوت گران مایه پرزردهنم، گفتم تو یوسفی نشانی بنمای نمای، گفتا که به خون غرغ مگر پیرهنم.